از اتفاقات جست و گریخته پنج دقیقه آخر سر میز همین یادم است که بی جهت را را رو روشن کردند و من از روی کنجکاوی هم دلم میخواست به همه نگاه کنم و هم نمیخواستم چشمم به چشم کسی بیفتد. نمی توانستم حدس بزنم دیزی و تام به چه فکر می کنند اما به نظرم حتی دوشیزه بیکر که به نظر می رسید در این عالم شکاکیت سرد و گرم چشیده بود هم نمی توانست صدای گوشخراش و زنگدار این پنجمین مهمان فلزی را از ذهنش بیرون کند شاید برای بعضی ها قرار گرفتن در چنین موقعیتی بسیار جالب به نظر برسد اما من ذاتم طوری است که در چنین لحظاتی باید فوری به پلیس تلفن کنم لازم نیست بگویم که دیگر صحبتی از اسب و استبل نشد تام و دوشیزه بکر در تاریک و روشن آخر غروب به طرف کتابخانه راه افتادند انگار برای شب زندهداری در کنار جسدی میرفتند من هم در حالی که سعی داشتم خیلی مودبان خودم را علاقمن نشان بدم و در عین حال کمی هم خودم را به کری زده بودم پشت سر دیزی را افتادم و بعد از گذشتن از چند ایوان مرتبط با هم به ایوان جلوی اماارت رسیدیم و در تاریکی آنجا کنار هم روی کناپهی حسیری نشستیم دیزی صورتش را بین دو دستش گرفت طوری که انگار میخواست شکل صورت دوست داشتنیش را لمس کند و بعد آرام چشمهایش را چرخان به سمت شب مخملی متوجه تلاطم احساسی او شدم و به امید آرام کردنش از دختر کچولویش سوال کردم که بی مقدمه گفت ما با اینکه که ایم خیلی همدیگر نمیشنسیم حتی تو برای هم نیک اون موقع هنوز از جنگ بر نگشته بودم من کرد و گفت آه درست خب من روزگار خیلی بایی داشتم نیک به همه چی بد بینم منتظر توضیحش ماندم اما دیگر حرفی نزد و من بعد از چند لحظه سکوت گفتم شاید بهتر باشد کم کم موضوع را به سمت دخترش ببرم فکر کنم دختر کوچولتون حرف میزنه غذا میخوره و کارای دیگه نه؟ آه آره دیزی داشت به من نگاه می کرد اما حواسش کاملا پرت بود. آه، گوش کنی که بذارت بگم وقتی به دنیا اومد چی گفتم. دوست تعریف کنم؟ ما خیلی زیاد. این قضیه نشون میده که چرا من نسبت به همه چیز اینقدر بدبین شدم. هنوز یه ساعت از تولد دخترم نگذشته بود و خدا میدونه تام کجا بود. وقتی به هوش اومدم خیلی خودم و تنها اسم کردم از پرستار پرسیدم بچه پسره دختر؟ گفت دختر و من سرمو چرخوندم و گریه کردم. خب بعد خوشحال شدم که دختره و آرزو کردم که نفهم از آب در بیاد این بهترین حالت برای یه دختره این که خوشگل و احمق باشه بعد اینطور ادامه داد میبینی؟ من به هر حال فکر میکنم همه چی مزخرفه سعی داشت متقاعدم کند همه اینجوری فکر میکنم همه اینجوری فکر میکنم حتی آدم همه چیز فهم من اینو میدونم من همه جا بودم همه چیز دیدم و همه کار کردم چشمایش با غرور به اطراف چرخید چیزی شبیه نگاه های تام و بعد هیجان زده خنده تمسخرآمیزی آمیزی کرد. <تصفح> وای خدای من. علامه در شدم برای خودم. همین که صدایش خاموش شد و تأثیرش بر هوش و حواس و قوه تفکرم از بین رفت فهمیدم که هیچ صداقتی در حرفویش نبود. معذب شدم. انگار تمام آن شب یک جور حقه بود تا همدلیم را جلب کند. صبر کردم و یک لحظه بعد درست همانطور که فکر میکردم دیزی در حالی که چنان لبخند رضایتی بر چهره داشت که گویی عضویت خودش را در انجمنی سری که خودش و تام آن بودند تایید میکرد. چراغ اتاق ارغوانی امارت روشن شده بود. تام و دوشیزه بکر دو سر دراز نشسته بودند و دوشیزه بکر برای او از مجله اصر شنبه میخواند. کلمات زمزمه رو یک نواخت با لحنی آرامش به خوانده نور چراغ روی چکمه های تام برق می زد، اما روی موهای زرد پاییزی دوشیزه بیکر حالتی مات داشت و وقتی دوشیزه بیکر با لرزش ماهیچه های کشیدهش مجله را ورق می زد، نور چراغ روی کاغذ هم منعکس می شد. وقتی من و دیزی وارد شدیم دوشیزه بیکر دستش را به نشانه یک لحظه سکوت بلند کرد. بعد در حالی که مجله را روی میز میانداخت گفت، بقیه در شماره بعد، با یک تکانی بیقرار به زانویش بلند شد و گفت، ساعت دهه، انگار ساعت را از روی سخف خونده بود، وقتش دیگه دختر خوب بره بخوابه دیزی گفت، جردن فردا تو وستچستر مسابقه داره، آه شما جردن بکرید؟ تازه فهمیدم چرا چهرهش برایم آشنا بود، آن چهره زیبا با آن نگاه تغییرآمیز از درون عکس‌های ورزشی آشویل هات اسپرینگز و پالم بیچ بارها به من چشم دوخته بود در مورد او جریان‌هایی هم شنیده بودم بدگویی‌های ناخوشایند اما اینها مال قبل بود و خیلی وقت بود همه را فراموش کرده بودم به نرمی گفت شب بخیر ساعت هشت بیدارم کنین باشه؟ اگه بیدار شی بیدار میشم شب بخیر آقای کاراوی امیدوارم به‌زودی ببینمتون دیزی با تاکید گفت: شک نکن که میبینیش به نظرم باید ترتیبه عروسی رو بدم. نیک، زیاد بیا اینجا. اون وقت من یه جوری شما رو میرسونم ره هم شاید شما رو تو رخشی گیر بندازم و در رو روتون قفل کنم. شاید هم سوار قایقتون کردم فرستادم وسط دریا و از اینجور جور کارا. تو شیزه بکر از وسط پله‌ها داد زد: شب بخیر. من که یک کلمش هم نشنیدم. تام بعد از سکوتی کوتاه گفت: دختر خوبی هستم. ولش می‌کردن همینجوری برای خودش تو مملکت بچرخه. دیزی به سردی پرسید، کی نباید ولش میکرد؟ خانوادهش؟ خونوادش یه است که هزار سالشه، تازه قراره نیک هواشو داشته باشه مگه نه نیک؟ جوردن قراره بیشتر آخر هفته این تابستونه اینجا باشه فکر کنم تأثیر خونه و خانواده برش مفید باشه دیزی و تام لحظه بیحرف به هم نگاه کردند من سری پرسیدم، اهل نیویورکه؟ اهل لوی و یله. دوران بچگیمون اونجا با هم گذروندیم دوران بی و قشنگ دختریمونو ناگهان تام پرسید تو ایرون با نک خوب درد دل کردیم دیزی به من نگاه کرد درد دل یادم نمیاد اما فکر کنم درباره نژاد شمال اروپا با هم حرف زدیم آره در موردش حرف زدیم یه جوری خزید تو حرفای ما و اتا خواستیم تو میکنم به چیزایی که شنیدی اعتماد نکن خیال گفتم که چیزی نشنیدم و چند دقیقه بعد بلند شدم که بروم خانه آنها تا دم در همراهیم هم کردند و خیلی زیبا شانه به شانه هم زیر نوری استادند همین که ماشین را روشن کردم دیزی آمرانه گفت صب کن یادم یه چیزی ازت بپرسم خیلی مهمه ما شنیدیم تو با یک دختر تو قرب نامزد کردی تام با محبت تاکید کرد آره شنیدیم نامزد کردی برام حرف داره بردن. من آه در بساط ندارم دیزی با اصرار پرسید ولی ما اینطور شنیدیم و باز مثل یک گل شکفت و حیرتم انداخت ما این حرف رو از سه نفر شنیدیم پس باید درست باشه می دانستم غضیه از کجا آب میخورد. اما من به هیچ با کسی نامزد نبودم حقیقت این بود که یکی از دلایل آمدنم به شرق پخ شدن همین شایعه بود میشد با یک دوست قدیمی به خاطر یک شایعه به هم بزنی و نه من آدمی بودم که بخواهم به خاطر یک شایعه تن به ازدواج بدهم تحت تأثیر علاقه آنها به موضوع قرار گرفتم و آنها با آن همه ثروتی که داشتند برایم دست یافتنی‌تر شدند با این حال در راه برگشت گیج و مبهوت بودم و احساس تنفر سر تا پایم را گرفته بود به نظرم دیزی باید بچه به بغل تام را ترک می کرد، اما گویا به چنین چیزی فکر هم نمی کرد. در مورد تام هم بیشتر از اینکه که که در نیویورک داشت شگفت زدم کند، عدای ناامیدی و افسردگیش بعد از خواندن یک کتاب شگف زدم کرده بود. چیزی که وادارش میکرد به گوش و کنار ایده های بیاد شده تک بزند. انگار دیگر خود خودشیفتگی جسم تنومندش قلب مستبدش را تغذیه نمیکرد. از همین حالا تابستان کامل سر رسیده بود و پشت بام های کنار راه و گاراژهای های کنار جاده با پمپ بنزین های قرمز و نویشان غرق نور تابستان بودند. وقتی به محله من در ویست رسیدم ماشین را زیر سایبانش پارک کردم و کمی روی غلطک چمن ای که در حیات افتاده بود نشستم. باد فروکش کرده بود و شب پر آهنگ و نورفشانی افشانی به جا گذاشته بود. صدای به هم خوردن برک های درختان میآمد و یک صدای ارگ مانند هم از زیر زمین به گوش می که در واقع آواز غرباقه ها بود. شبه لرزان یک گربه زیر نور ماه در حال حرکت بود. سرم را که به طرفش گرداندم دیدم تنها نیستم. پانزده متر آن طرفتر از سایه امارت همسایه مردی بیرون آمده بود که دستهایش را در جیبهایش کرده بود و در آسمان، ستاره‌های نغرهی فلفلی شکل را نگاه می‌کرد. چیزی در این رفتار پرتعنی و طرز ایستادن محکم او روی چمن‌ها وجود داشت که با خود گفتم این همان آقای گادزبی است که آمده بیرون تا ببیند چه سهمی از آسمان خدا دارد. خواستم صدایش کنم. لوشیز بکر سرشام از او نام برده بود و این بهانه خوبی برای آشنایی بود اما صدایش نکردم. چون با حرکتی ناگهانی نشان داد که از تنها بودنش راضی است بازوهایش را از دو طرف با حالتی عجیب در سیاهی شب به سمت آب کشید و حتی از آن فاصله می توانم قسم بخورم که بازوانش می لرزید بی اختیار نگاهی به دریا انداختم اما در دوردست به جز لکی سبز که شاید انتهای اسکله بود چیزی ندیدم وقتی باز به سمتی که گتسوی ایستاده بود نگاه کردم او ناپدید شده بود و من باز در آن تاریکی پرهایه بود تنها ماندم